نه هر که به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست کار اندرون دارد نه پوست توان شناخت به یک روز در شمایل مرد که تا کجاش رسید است پایگاه علوم ولی ز باطن مباش مباشو قره مشو که خبس نفس نگردد به سالها معلوم.